جوان و فرهنگ نام خدا خالق لحظه زیبای زندگی سلام و درود بر شما همراهان شم. افثانه های هر کشور نشان ی وضع زندگی گذشتگان اون کشوره علت پیشرفت و عقب ماندگی بعد تاریخ گمشده هر کشوری رو میشه در افسانه‌ها و قصه های آمیانی اون کشور جسجو کرد این هفته براتون افثانه از مردمان سرزمین ویتنام نقل میکنم به نام افسانگی دانای بزرگ برگرفت از کتاب هدیه ی با ترجمه ی از عبدالسالح پاک و تنگرگولی یلقی امیدواریم از شنیدن این افثانی زیبای ویتنامی لذت ببریم روزی روزگاری در زمانهای بسیار قدیم در سرزمین ویتنام پادشاهی بود که فکر میکرد در تمام سرزمینش داناتر و آقلتر از خودش پیدا نمیشه. روزی از روزها فرمان داد که تمام سرزمینش رو بگردن و آقلترین فرد رو پیدا کنن و به حضورش بیارن تا معلوم بشه که چه کسی از همه داناتر و حالا سه مأمورای پادشاه توشه یه سفر برداشتن و سوار بر اسب یکی به طرف جنوب، یکی به طرف شمال، یکی به شرق و یکی به غرب رفتن. اونا به هر کجایی که می رسیدن با طرح معماهای مختلف سعی می‌کردن عاقل‌ترین فرد رو پیدا کنن ولی کسی رو پیدا نکردن که قادر به حل اون معماها باشه. مأمورا تمام سرزمین رو گشتن تا اینکه یه روز یکی از مأموران پادشاه از کنار یک مزرعه رد میشد اون دید که کشاورزی همراه پسرش مشغول شخل زدن زمینه مأمور پادشاه بر اینکه استراحتی بکنه و با پرسیدن معماهای سخت تفریحی کرده باشه و کمی خندیده باشه راهش رو به طرف کشاورز و پسرش کچ کرد وقتی به اونها نزدیک شد با صدای بلند از کشاورز پرسید آی کشاورز آیا می‌دونی که گاومیشات روزی چند بار از این سرزمین تا اون سرزمین سرش میره و برمیگرده؟ کشاورز کمی فکر کرد اما جوابی برای سوال مأمور پادشاه پیدا نکرد. اصلا اون تا به حال به این قضیه فکر هم نکرده بود. اون فکر نکرده بود که ممکنه روزی کسی چون این سوالی ازش بکنه. کشاورز دست و نگران شد و ساکت موند. پسرک که دید پدرش از جواب معمور در مونده پیش معمور رفت و گفت ای معمور پادشاه. اجازه بده اول من یه سوال از شما بکنم. شما اول جواب سوال منو بده تا من بعدم جواب سوال شما رو بدم. معمور پادشا که خیلی مغرور و از خود راضی بود قبول کرد. پسرک ازش پرسید. بگو ببینم اسب شما هر روز چند بار قدم بر می دره؟ معمور پادشا که اصلا روی این مسئله فکر نکرده بود از دادن جواب درمونده شد به با خودش فکر کرد که عاقل ترین فرد رو پیدا کرده. بنابراین اسم پسر و پدر رو پرسید و به طرف قصر پادشاه برا افتاد تا چه زودتر این خبر رو به عرض پادشاه برسونه پادشاه هست شنیدن این خبر خوشحال شد و تصمیم گرفت که اون پسر رو امتحان کنه تا ببینه که اون واقعا داناست یا مأمورش به طور اتفاقی این خبر رو بهش رسونده پادشاه امر کرد که به روستای محل زندگی کشاورز و پسرش برن و سه کیسه برنج و صفه گاو میشه نر برای اونها هدیه ببرن و از اونا بخوان که بعد از یک سال شش گوساله را از این های نر تحویل و گرنه تمام روستایان مجبور میشن مالیات های سنگین به خزانه پادشاه بپردازند. وقتی سه کیسه برنج و سه گاومیش نر از طرف پادشاه به عنوان هدیه به روستایان تحویل داده شد، همه مردم روستا به جشن و پایکوبی پرداختن اما اما وقتی از نیت پادشاه باخبر شدن غمگین و قصدار شدند که حالا چجوری میخوان از سه تا گارنیش نر ششت و گوساله تحویلی پادشا بدن خبر به گوش کشاورز و پسرش رسید پسرک وقتی خبر رو شنید از پدرش پرسید پدر جان آیا تابال پیش اومده که پادشا چون این هدیه ای رو اینجا بفرسته کشاورز هم که خیلی نگران و قصدار بود گفت نه پسرم این هدیه ها بی حکمت نیست حتما در پشت این هدیه ها و این خواسته های پادشاه هدفی نهفته است پسرک کمی فکر کرد بعد به پدرش گفت بدرجان به عالی روستا بگو که دوتا از گاومیش ها رو بکشن و همراه با دو کیس از برنج ها غذایی درست کنن. باید جشن بزرگی برپا کنیم. پدر با تعجب پرسید. جشن بزرگ؟ چه جشنی؟ پسرک گفت. یه جشن واقعی. یکی سه برنج و یه گاومیش رو هم عنوان هدیه به خونه ما بفرستن تا من این مشکل روستایان رو حل کنم. کشاورز گفت. ولی پسرم اگه ما برنج ها رو بخوریم و گاو میشا رو بکشیم کار ما مشکلتر میشه. بهتره که این کار نکنی. بذار ببینم مردم چه تصمیم میگیرن. هر بلایی که سر همه اومد. ما هم مجبوریم همون بلا رو تحمل کنیم. ولی پسرک با خواهش و التماس به پدرش گفت. نگران نباش پدر جان. خواهش میکنم. خواهش میکنم اجازه بدین من این مشکل رو حل کنم. براخره یکی باید این مشه را حل کنه خب بذار من اون یه نفر باشم کشاورز راضی شد و پیش ریش سفیدان روستا رفت و تمام ماجرا رو برای اونها تعریف کرد ریش سفیدان وقتی شنیدند که پسر کشاورز میخواد دو تا از گاومیش ها رو بکشه و با دو کیسه برنج غذا درست کنه راضی به این کار نشدن و گفتن که این کار مشکل اونا رو سخت میکنه. ولی کشاورز اصرار کرد و در نهایت اونا قبول کردند. ولی از کشاورز قول گرفتن که اون و پسرش جوابگوی پادشاه باشن. خلاصه مردم روستا با نظر ریش سفیدان جشن بزرگی برپا کردند دوتا از از ها رو هم همراه دو کیسه برنج پختند و به جشن و پایکوبی مشغول شدن بعد از چند روز پسرک و مرد کشاورز با هم به طرف قصر پادشاه بر وقتی به اونجا رسیدن پسرک به پدرش گفت پدر جان تو جلوی دروازه قصر منتظر من باش من فوری برمیگردم پسرک دور از چشم نگهبانان غصر وارد غصر پادشاه شد و در کنار پنجره اتاق مخصوص پادشاه شروع کرد به گریه کردن. حالا گریه نکن که گریه بکن. پادشاه وقتی صدای گریه پسرک رو شنید معمولی رو فرستاد تا بفهمه اون کیه که اینطور داره گریه میکنه و علت گریه چیه و چرا اومده توی غصر؟ معمول پادشاه به سراغ پسرک رفت و علت گریه کردنش رو پرسید پسرک گفت جناب مامور چند سال پیش مادرم از دنیا رفت و من با پدرم تنها موندم پدرم برای کار کردن بیرون میره و من توی خونه تنها میمونم و هیچ همبازی و همصحبتی ندارم هرچه هم از پدرم خواهش میکنم که پسری برام به دنیا بیاره به عرفم گوش نمیده و میگه این کار غیر ممکنه. معمور پرسید خب این کار چه ربطی به پادشاه داره؟ اون باید چیکار کنه؟ پسرک جواب داد من اومدم از پادشاه خواهش کنم که به پدرم دستور بده که برای من یه برادری به دنیا بیاره و منو از تنهایی نجات بده معمور پادشاه که از حرف‌های پسرک خندش گرفته بود رفت تا علت گریه اونو به پادشاه خبر بده و وقتی حرف‌های پسرک رو برای پادشاه بازو کرد پادشاه قاه قه خندید و بعد هم دستور داد پسرک رو به حضورش بیارد پسرک به حضور پادشاه رسید پادشاه با مهروونی بهش گفت پسر جان برای اینکه تو صاحب برادری بشی باید پدرت ازدواج کنه وگرنه پدرت که نمیتونه بچهای به دنیا بیاره پسرک در جواب پادشاه گفت ای پادشاه مگه شما به مردم روستایی ما امن نکردید که از سه گاو میشه نر در از یک سال شش گوساله ساله بیارن و به حضور شما بفرستن پس چطور میشه که گاومیش های نر میتونن گوساله ساله به دنیا بیارن ولی پدر من نمیتونه بچه به دنیا بیاره پادشاه از جواب پسرک خوشحال شده گفت پسر جان من میخواستم روستا رو آزمایش کنم و بعد از پسرک پرسید راستی شما با گاومیش ها و برنج چیکار کردین؟ پسرک جواب داد اروان، دوتا از گاومیشا رو کشتیم و به همراه دو کیسه برنج پختیم و برای سلامتی و طول عمر شما جشن بزرگی برپا کردیم و به شادی و پایکوبی پرداختیم. پادشاه، فهمید که این پسرک از خودش هم آقل بنابراین تصمیم گرفت، پسرک افسانه ما رو یه بار دیگه امتحان کنه. برای همین دستور داد که برای پسرک و پدرش اتاقی رو آماده کردند. تا چند روزی در اونجا استراحت کنند. فردای اون روز پسرک و پدرش در اتاق مشغول خوردن غذا بودند که یه دفعه مأمور پادشاه اومد و کلاقی رو به دست پسرک داد و گفت پادشاه امر فرموده که این کلاق رو بکشید و اونو طوری قسمت کنید که به سه نفر به یک اندازه برسه پسرک وقتی دستور پادشاه رو شنید فوری کمربند چرمی پدرش رو به دست مأمور داد و گفت به پادشاه بگو که از این کمربند چرمی یک کارد تیز درست کنه تا من بتونم با اون کلاغ رو سر ببرم و اون رو به سه قسمت تقسیم کنم مأمور پادشاه هم فوراً کمربند رو گرفت و نزد پادشاه رسید و خواسته پسرک رو مطرح کرد پادشاه وقتی این حرف رو شنید دیگه یقین پیدا کرد که توی تمام کشورش این پسرک از همه آقل تره و از این بابت خیلی خوشحال شد و با خودش گفت آه آدم عاقل و فهمیده برای هر ولایت و سرزمین و کشوری یه نعمته و بعد پاداش خوبی به پسرک کرد. چند روزی از این ماجرا گذشت پسرک و پدرش از پادشاه اجازه مرخصی خواستن تا به روستای خودشون برگردن پادشاه هم با رفتن اونها موافقت کرد پسرک و کشاورز ماجرا رو برای مردم روستا تعریف کردن اهالی روستا خوشحال شدن و دوباره به جشن و پایکوبی پرداختن مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه پادشاه کشور پرقدرت همسایه مأموری به حضور پادشاه سرزمین همسایه فرستاد. مأمور به حضور پادشاه رسید و حلزون پیش در پیچی رو جلوی اون گذاشته گفت قربان ای پادشاه اگر در سرزمین تو کسی پیدا نشه که نخی رو از این حلزون رد بکنه ما به سرزمین شما حمله میکنیم و اون رو تصرف خواهیم کرد. پادشاه از شنیدن این حرف خیلی نگران شد چون میدونست که با قدرت شمشیر نمیتونه با اونها مقابله کنه بنابراین در شدت بر اومد تا از دانشمندان و آگاهان سرزمینش کمک بگیره پادشاه تمام دانشمندان بزرگ و جوانان دانا و پیران با تجربه کشورش رو فراخوند و ماجرا رو برای اونها بازگو کرد دانشمندان و آگاهان همه و همه به فکر فرو رفتن تا بلکه چارهای بی‌اندیشند ولی هرچه چه تفکر و اندیشه کردند به هیچ جا نرسیدند پادشاه دید کشورش داره از دست میره خیلی عصبانی و ناراحت بود و نمیدونست چیکار کنه تا اینکه یک شب که با تمام وزیران و وکلای خودش روی قصر نشسته بودند و در حال پیدا کردن چارهای بودند یه دفعه یاد پسرک افتاد با خوشحالی دستور داد که فورا پسرک رو به حضورش بیارد معمور پادشاه رفت سراغ پسرک و وقتی به در خونه اونها رسید دید که پسرک داره بازی میکنه و سر و صورتش حسابی خاکی و کسیف شده معمور پادشاه به اون نزدیک شد و مشکل پادشاه رو برای پسرک افسانه ما تعریف کرد پسرک در جواب گفت ای معمور من نمیتونم به قصر پادشاه بیام چون خیلی دوره و الان هم پدرم اینجا نیست ولی به پادشاه بگو که نخی رو به ای ببنده و اون رو توی هلزون بفرسته و سر دیگه هلزون رو روغن بماله وقتی موچه به آخر اون برسه گرسنه میشه و اونو به امید خوردن روغن سوراخ میکنه اون وقت نخ هم از هلزون میگذره تنها راه حلش شمینه مأمور با خوشحالی به طرف قصل بهراه افتاد تا پادشاه رو از نگرانی در بیاره. وقتی معمور به قصد رسید پادشاه بی در انتظارش بود و فورا پرسید کجاست؟ پسر کشاورز کجاست؟ چرا نیومد؟ معمور پادشاه با خوشحالی گفت قربان من چاره کار رو ازش گرفتم نجات پیدا کردیم. به بعد راه حلی رو که پسر گفت برای پادشاه بازگو کرد. و پادشاه هم فورا همون کاری رو که پسرک گفته بود انجام داد. معمور سرزمین همسایه وقتی دید که معماش حل شده، حیرت زده دست از پادرازتر به کشورش بازگشت. بعد از اون پادشاه به پسرک افثانه ایما لقب دانای بزرگ داد و در کنار غصر خودش قصری بسیار زیبا و مجلل برای پسرک و کشاورز ساخت تا پسرک دانا همیشه در کنارش باشه و هر وقت با مشکل برخورد کرد پسرک دانا کمکش میده افسانی از مردمان سرزمین ویتنام شنیدید به نام افسانه دانایی بزرگ برگرفته از کتاب تجیه کراغا با ترجمه از عبدالسلام پاک و تنقرقلی یلقی نویسندگانی مانند هانس کریستیان اندرسون دانمارکی، چارلز دیکنز انگلیسی، ویلیام شکسپیر انگلیسی، اچ هاوارد پاپل آمریکایی پوشکین روسی و بسیاری از نویسندگان دیگر علاقه فراوانی به افسانه ها داشتند و از آثار گویندگان بی سواد قصه ها و افسانه ها الهام گرفته و آثار ارزشمندی از خودشون بی یادگار گذاشتند حتی بعضی از موسیقی دانان بزرگ دنیا برای افسانه ها آهنگ و باله ساختند هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده زینت صابرپور ویراستار سهیلا کریمی اقدا اجرا مهران دوستی صدا بردار جایی کردند زهرا عبدالله سات. تا افسانه‌ای دیگر بترود.